گروه جوان و فرهنگ به نام خداوند یگانه مهربان سلام و درود به شما شرمندگان ارجمند شبکه رادیویی جوان افسانه ها سفیران فرهنگ عقاید و آرمان های هر قوم و ملتی اند از ملتی به ملت دیگه سفر میکنند و هر قوم و ملتی بر اساس فرهنگ، مکان و آرزوهای متفاوتش در اونها تغییراتی به وجود میاره. افسانه ای رو برتون انتخاب کردیم از گنجینه ادبیات شفاهی مردم ترکمنستان به نام افسانه میوه سهرامیز و وزیر کینجو بریرفت از کتاب افثانه های مردم دنیا تعلیف عبدالرحمن دیجی روزی روزگاری در سالهای خیلی دور که شاید خیلی از ما نبودیم پاکشاهی زندگی میکرد که یه توتی پیشگو داشت پاکشاه هفتانه ما به این توتی دلبستگی خاصی داشت و به این خاطر وزیر ناراحت بود و به توتی حسادت میکرد روزی از روزا توتی که کمی درش گرفته بود خاص که از غصب بیرون بره و هوایی بخوره و برگرده. بنابراین به پادشاه گفت: پادشاه مهره بود. اجازه بده برم و اطراف غصب گشتی بزنم و برگرد. پادشاه با خاستیگ توتی مخالفتی نداشت ولی وزیر حسود به پادشاه گفت: قربان اگه این توتی از اینجا بیرون بره دیگه امکان نداره به غصب برگرده. پادشاه گفت هم، ولی وزیر اون گفت برمیگرده وزیر پوسندی زد زده گفت بر قربان شما با این همه فهم و تجربه چطور به حرف این تودی که سالهای سال تو قفص بوده و آرزوی رهایی داره اعتماد می نه اون دروغ می گه. اجازه ندین از اینجا بره قربان پادشاه که به توتی اعتماد داشت این حرف وزیر رو نپذیرفت و گفت نه نه وزیر من به اون اجازه میدم بیرون بره اگه حرف تو درست بود و اون برنگشت مقام پادشاهی من مال تو و اگه حرف من درست بود و اون برگشت تو باید هرچی داری به من بدی قبول وزیر وزیر این شرف رو پذیرفت و با اجازه پادشاه توتی پرواز کرد و رد یه روز از رفتن توتی گذشت و توتی برنگشت وزیر با خوشحالی پیش پادشاه رفت و گفت قربان من که عرض کردم به این توتی اعتماد نکنید باور کنید من درباره به دست آوردن مقام شما فکر هم نمی کنم پادشاهی قربان برازنده شخص شماست فقط نگران دلبستگی شما به این توتی هم وزیر بعد با تظاهر به ناراحتی ادامه داد ای تو نمک نشناس <تصفيق> چطور تونستی؟ از اعتماد جناب پادشاه سو استفاده کنی و روح قبله عالم رو آزار بدی ای تو نمک نشناس اما روز بعد توتی برگشت، پادشاه خوشحال شد و وزیر ناراحت. چرا که با برگشتن توتی طبق قرارش با پادشاه میبایست هر چی داره به پادشاه بده و از قصر بیرون بره. بله. توتی به قصر برگشت و دونه ای رو برای پادشاه آورد و گفت: اگه این دونه رو بکاری، درخت انگوری میشه که اگه پیرمردی از اون بخوره جوون میشه. جوون 18 ساله پادشاه خوشحال شد و فوری دستور داد که زن شوهر پیری رو به غصب بیارند. در عرض چند دقیقه معموران پادشاه باقبون پیری رو به همراه زنش که اونم پیر و فرتوت بود به حضور پادشاه وردن و پادشاه دونه رو بونها داد تا بکارن و بونها گفت این دونه رو بکارید چرا که این دونه برای من خیلی با ارزشه، خیلی خوب ازش موازمت کنید خیلی خوب هر وقت این درخت میله داد میتونید نیمی از میوه های اونو خودتون بخورید و بقیه رو هم برای من بیارید. پیرمرد و زنش با خوشحالی پذیرفتند و قول دادند که به خوبی از اون دونه مواظبت کنند و بعد پادشاه رو دعا کردن و از قصر خارج شدند و اما بشنوید از وزیر حسود. پادشاه طبق قرارش، با وزیر مقام وزارت و تمام دارایی و ثروتی رو که وزیر داشت ازش گرفت. وزیر با ناراحتی و عصبانیت قصد رو ترک کرد. ولی منتظر فرصتی بود تا دوباره به قصد برگرده و از پادشاه انتقام بگیره. روزها پی در پی هم میگذشت پیرمرد باغبون و زنش حسابی از دونه انگور مراقبت کردند تا اینکه که دونه ای که توتی آورده بود درخت بزرگی شد این درخت دو خوشه انگور داد انگورا رسیدن باغبون پیر همونطور که پادشاه بهش اجازه داده بود یکی از اون خوشهای انگور رو برای خودش نگرداشت یکی دیگر رو چید که برای پادشاه ببره پیر مرد و زنش با دست پر خوشحال به طرف قصر پادشاه براه افتادند تا چه زودتر اون خوش ینگور رو به پادشاه برسونن. اونا در بین راه به وزیر قبلی پادشاه پرخور کردند. وزیر با زیدکی ورسید سلام بر باغبان پیر با این عجله کجا می‌ریم؟ باغبان گفت داریم میریم خدمت پادشاه آخه دونه رو که پادشاه داده بود درختی شد و خوشه انگوری به بارا بود حالا یکی از این خوشه ها رو برای پادشاه میبریم وزیر سری تکون داد و گفت که اینتر. پس بالاخره اون دونه به بار نشست و چون هنوز منتظر فرصتی بود که از پادشاه انتقام بگیره فکری کرد و ادامه داد من فکر میکنم الان ساعت استراحت پادشاهه بهتر الان استراحت استراحتون نشید بیاین بریم خونه من یک کمی استراحت کنید بعد با هم دیگه میریم خدمت پادشاه پیرمرد و زنش که راه زیادی اومده بودن با این پیشناد وزیر موافقت کردن و با اون به خونش رفتن وزیر هم به خوبی از اونا پذیرایی کرد و در یک فرصت مناسب اونها گفت خب حالا این خوشه انگور قیمتش چقدره مم باید دونه های درشتی هم داشته باشه و بعد با زیرکی خوشه انگور رو گرفت و گفت به به به به به چه انگوری باید خیلی هم شیرین و خوشمزه باشه پادشاه حتما از خوردنش لذات زیادی میبره. و بعد در یه فرصت مناسب خوشه انگور رو وزیر به زهر آلوده کرد و به دست باغبون داد و گفت خب تا الان دیگه پادشاه استراحتش رو کرده بهترف را بیفتیم و بریم به قصر. چند دقیقه بعد، وزیر و پیرمرد و زنش به طرف قصر پادشاه به راه افتادند. پیر مرد و زنش به همراه وزیر به قصر پادشاه رفتند. پادشاه از دیدن پیر مرد باقبون خیلی خوشحال شده گفت آ میبینم که درخت انگور حسابی به بار نشسته. به باقبون پیر انگور رو به پادشاه داده گفت قربان این نصف انگوریه که فرموده بودین براتون بیارین تا نوشجان کنین باید انگور ای باشه. پادشاه خوشه انگور رو از باغبون گرفته گفت من منتظر بودم شماها رو جوون ببینم پیرمرد گفت اربان ما ترجیح دادیم اول سهم انگور شما رو بیاریم خدمتتون بعد سر فرصت سهم خودمون رو بخوریم پادشاه انعامی به پیرمرد باغبون و زنش داد و اونها به خونهشون برگشتن حالا نوبت وزیر بود که کینه جویی خودش رو به پادشاه نشون بده بنابراین بعد از رفتن پیرمرد و زنش وقتی پادشاه خواست خوشه انگور رو بخوره وزیر گفت قربان دست نگه دارین دست نگه دارین قربان درسته که من دیگه وزیر شما نیستم ولی باور کنید هنوز به شما وفادارم من من فکر میکنم بهتر قبل از خوردن این خوشهٔ انگور اونو امتحان کنید قربان پادشاه با تعجب پرسید چه امتحانی وزیر وزیر سابق گفت قربان چون تا به حال کسی از این انگور نخورده بهتره قبل از شما جسارتا حیونی از اون بخوره شاید شاید میوهی سالمی نباشه قربان پادشاه فکری کرد و حرف وزیر رو تأیید کرد. بعد پادشاه با شنیدن حرف وزیر سابقه شک کرد و چند دونه انگور رو به سگی که اون دوروبرها پرسه میزد زد خروند. سگ بیچاره بعد از خوردن دونه های انگور جا به جا افتاد و مرد. وزیر گفت دیدین گربان دیدین من از اون اولشم به این توتی مشکوچ بودم. اون امدن برگشت چون برای شما نخش داشت قربان حیف, حیف. این همه مهر دلبستگی که شما سالها صرف این توتیه نمک نشناس کردید حیف. خلاصه وزیر تا تونست از توتیه بیچاره پیش پادشاه بد گفت پادشاه هرچند دلش نمیخواستین حرفها رو حقیقت بپنداره ولی حرفهای وزیر رو پذیرفت. و از وزیر پرسید خوب وزیر به نظر تو با یک چیکار کرد وزیر که به خیار خودش داشت به هدفش که همون امتقامجویی از پادشاه بود نزدیک میشد گفت گربن بهترین کار اینی که این توتی نمک نشناز رو بکشید بله این بهترین کاره پادشاه کمی فکر کرد و گفت مم. اما من فکر میکنم تقصیر اون پیر مرد باغبون و زنش باشه شاید اونها وزیر بتوندی گفت نه قربا نه نه نه نه اون بیچارهایی که تقصیری ندارن نه اش تخصیریم اما این توتی بد جنسه پادشاه به فکر فرو رفت و بعد فریاد زد فوقران اون پیر مرد باغبون و زنش رو دستگیر کنید و به اینجا بیارید معموران شاهم برای آوردن پیر مرد باغبون و زنش از قصر خارج معموران پادشاه به باغ پیرمرد باغبون رفتند ولی هرچی گشتن خبری از این مرد و زن نبود که نبود یکی از مأموران پادشاه گفت باید هر طور شده این پیرمرد و پیرزن رو پیدا کنیم و گرنات پادشا عصبانی میشه و ممکنه گردن ما رو بزنه و بعد فریاد زد همه جای باغ را خوب بگردید زود باشید مأموران پادشاه همه جای باغ رو گشتن و در رو زیر درخت انگور چشمشون به یه دختر و پسر ده سال افتاد، که داشتن گل میگفتن و گل میشنفتن. یکی از مأمور از اونا پرسید: شماها شما اینجا یه پیرمرد و پیرزن رو ندیدید؟ اونا باغبون این باغ بودن. دختر و پسر جوون نگاهی به هم انداختن و زدن زیر خنده. مأموران پادشاه عصبانی شدن و گفتن: چرا, می... چرا میخندین؟ کجای حرف ما خنده داره؟ دختر و پسر جوون گفتن: اونا جلوی روی شما ایستادن ما خودمون همون پیرمرد و پیرزن باقبونی مامورا با تعجب گفتن شما ما برای شوخی و بازی اینجا نیومدیم ما دختر و پسر جوون گفتن باور کنین ما خودمونیم ولی مامورای پادشاه نمیتونستن باور کنن این دو جوون شاد و سرزنده همون پیرمرد و پیرزن زن باغبونی باشند که پادشاه اونا رو احزار کرده و گفتن ما با شما جوونا کاری نداریم به بعد نومیدانه به قصد بازگشتن مأمورای پادشاه وقتی به قصر رسیدن تمام ماجرا رو برای پادشاه تعریف کردن و گفتن به جز یه دختر و پسر جوون کسی رو توی باغ ندیدن. پادشاه هم دستور داد مأموراش برن و همون دختر و پسر جوون رو به قصر بیارن. این بار هم مأمورای پادشاه به باغ رفتن و دیدن همون دختر و پسر جوون زیر درخت انگور در حال بگو بخنده. اون را تسیر کردند و به حضور پادشاه بردن. پادشاه از دو جوون پرسید: شماها با اجازه چه کسی به اون باغ رفتین؟ دو تا جوون جواب دادن: قربان با اجازه شخص شما. پادشاه فریاد زد: خاموش! من فقط به اون پیرمرد باغبون و زنش اجازه داده بودم توی اون باغ باشند. نکس دیگه ای پسر و دختر جوون لبخندی زدن و گفتن قربان ما ما همون پیر مرد و پیر زن باقبونیم. پادشاه با تعجب نگاهی به دو جوون انداخت و گفت آه این امکان نداره یعنی شماها واقعا و پسر جوون گفت قربان من و زنم از اون نصف خوشهی که خودتون برامون تین کرده بودین خوردیم و اینجوری جوون شدیم پادشاه با شنیدن این حرف سخت به فکر فرو رفت به بعد پرسید ها چی پرسید؟ چند لحظه صبر کنین الان براتون میگه بله پادشاه فهمید که باید کاسه‌ای زیر نیم کاسه باشه به برای همینم پرسید آیا قبل از اینکه اون نصف خوش انگور رو برای من بیاری کسی اون خوشه رو دید و به اون دست زد؟ دو تا جوون نگاهی به هم انداختن و بعد از کمی فکر کردن گفتن بله بله بله, بله ما وقتی داشتیم خوشه ی انگور رو برای شما می آوردیم توی راه به وزیر سابق شما برخورد کردیم اون از ما خواست که به خونش بریم و کمی استراحت کنیم و بعد به قصد بیاییم و انگور رو از دست ما گرفت و گفت به به عجب انگوری و پادشاه که پی به ی وزیرش برده بود گفت یک لازم نیست چیزی بگید حقیقت امر معلوم شد به بعد دستور داد وزیر حسود و هیلگرش رو به سیاه چال انداختن و از پسر و دختر جوان خواست که توی قصر بمونن و توی آشپزخونه مشغول به کار افثانه میوه سهرامیز و وزیر کینجو رو از مردمان کشور ترکمنستان براتون نقل کردم برگرفته از کتاب افسانه های مردم دنیا تعلیف عبدالرحمن دیچی افثانه ها همیشه شیرین و جهان پسندند از اونها درس ها و حکمت های ارزشمندی بیاموزیم هزار افثان کار مشترکی بود از نویسنده زینت سالح ویراستار سید فری برز نور برش اجرا مهران دوستی صدابردار ابوالفضل بیرامی یکننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه ای دیگر بدر